در مراجع عامه خاصی دیدی رو که مطرح میشه مذهب فقه از مخصص فقه مخصوص به آم یعنی اگر اصطلاح عام که بر حسب خبیر آیان حجت لغوی و اصل لغوی آیا بدون فقه میشه به تمسک کرد یا از این جهت آم هم مثل اصالات برای که یک اصل مدیس بدون دونه نمیشه مراجعه کن اصلا در بابه اصالات برایه به دونه از دلیل نمیشه تمسک به اصالات برایه, برایه کن آیا آم هم همین طوره نمیشه تمسک به آم کرد یا آم یه خودجه ایست که موجیهتش منعقد شده و احتیاج به فخص از مخصص نداره. مشهور بین ها و اصولین اون لزوم فحض از مخصصه حالا کیفیت وجه و استظهارش و خدستاتش فرموند ما تقریقایده خودمون بحث و اطداعا از کلمات مرحوم استاد عبدالله صلی در محاضره جلد پنج از طرفه دیویست و بحث شده بحث تا بحث سرسه یه دیمیست و دو دو دیست و کلاه هش حالا گشته با بکنیم خب ما تدریجا چون طولانی است. قسمت قسمت کلامان تیشان رو متعرض میشیم به نحوه اجمال و بعد ببینیم که تحریر مسئله چی ایشون وفاقاً لأستادشون مرحومه آقای محبه رنائنی یک مقدمه ای رو مطرح کرده و حاصل اون مقدم اینه که آیا بین فهض در مسئله عام فهض از مخصص با فهض از دلیل در مورد اصول عملی فرقی هست یا یعنی حقیقت این دو فهض یکیه یا یعنی. نه یعنی اگر ما عام می‌داشتیم یا مطلقی داشتیم مثل اهلالله آه و آیا ما می توانیم بزن تمثل کنیم بزن فهض از مخصص و مقدم یا نه یک بحثی یه اصول عملیه مثل اصافت برار اصافت الهدیان بحثی رو مجمع ناینی به باز با صاحب کفاری مطرح کردن که یا این دو تا فص یکی ام یا دو تا مجمع ناینی فرمانا دو تا دو جور فص در حالا من بجو اینکه بیام خاص اصل احلی اصل احرم بین اصل احلی با اصل عملی فرق اصل کنم چه جور دیگه‌ داریم کلام رو از می‌گم تفصیلی کلام رو در توضیحاتی که بعد ایشون فرمودن که مأقوم دائمی این است که فرقش اینه که در باب بحث از مخصص ما در حقیقت منشأ فص برمی‌گرده به بحث از مزاحم و به اصطلاح به علل مانع یعنی در باب اصل لزوم مقتضی موجوده ما که بحث میکنیم از وجود مخصص ثابتی مانع هست یا نه اما در اصول عملی بحث سر خود مختصیه فرقشی این میزن یعنی به عبارت دیگر در باب عام ظهور منعقد میشه حالا باید تفسیری که برگرس میشه ظهور منعقد میشه حجیت در آن لکه بحث میکنید که آیا مانع از این حجیت پیدا شده یا نه نمخصص هست یا. اما در باب اصل عملی در خود مختصی بحث میکنی مثلا اینکه آیا اینجا شعره مقدس حکمی نداره تا ما برگردیم برساطه براره مورد جهله و حکمی در آن این خلاصه فرمید که مرحوم نایم البته ایشان این اجمال رو اول فرمودن ولذا ایشون تغییرشون اینه که مختبی عمل در آن موجوده به دنبال مانه هستین در فرم اما در باب شبهات بدلیه در مورد همستا که به حسول عملی برای تطمیم محتضی اون وقتیشان یک توضیحی دادن هست مروم اما به اضافت الاساس برایت العقلیه نصد به برایت عقلیه چون برایت عقلیه منشأ خب حقاب لا بایانه خب معلوم نمیشه چون منشه موضوع این قاعده خب حقاب لا بیانه تا احراز لا بیانی نکنیم این قاعده جاری خب. بعد ایشون یک تعبیری دارن مرحوم استاد علون ازنای گرفتن ایشون خود ایشونه چون معنای رو نگا بعد ایشون دارن لو وضو انه لا یجب علی المولى ایصال الاحکام الی المكلفین این تعبیر ایشان تو وزیفه ای مولا که وظیفه مولا اینه که حکم رو به دانه ای به مکلفین برسونه بلکه وظیفه مولا بیان احکام به نحو متعارف به تعبیر ایشون یا به طبیر ما در زمان ما بیان احکام در رسانه میدیم این وظیفه مولا همین مرد وظیفه وزیفه قانون بیان در رسانه است. هر هم انسان هم مکلف هم حالایشون قبیر به عبدال مولای کردن شما که هر دوزه مثلا شهرن باقیم مکلف بکنه شهرن یا عرض هم یا او هم کهسته اونم باید سوال بکنه بررسی بکنه تا برسته به اگر دید چیزی رو مولا بیان نکرده اون رفت اساس برای عقلی رو جاری میکنه. و ولی ازایشون می که قبل از سه موضوع اساس البراقه عقلی اساس از این جاری احراز نمیشه شد چون موضوعش از لابیان این لابیان متوقف هست بر فرص فرده این بله راجع به این قسمه این البته در جام چاکی هم داره یه خدایشم مثلا تن نتیجه صبح از نشه این هم آقا قول میگه این تیمون غلطه تصمیم میگه اشکالات همون لما قطعه بعد این یکیسا و اما بعد مرموم آقای کوئی این بیان بیان مرموم نارینی هم هست آقای کوئی هم امروزشون دیده و این همون اشکال معروفی که اخباری ها کردن چار پنج ستی ایشان به این مناسبت در اون اشکال معروف اخباری ها اون اشکال معروف این است که ما برای تحقیق قاعد نیستیم بلکه قاعد هستیم به لزوم دفع ذره محتمل این بحث است که آیا ما در موارد شواهد بدلیه به قاعده دفع ذره محتمل برگردیم یا به قاعده قفع بیان اخباری ها قاعد به اون قاعده اصوله ها بین وقت مرحوم نایمین البته مثلا در شیخ هم هست مرحوم این دو قاعده با هم دیگه تنافی ندارن مثلا احتیاج نیست. خب این قاعده میگه دفع زره محتمل وقتی که شما این بیان نشد دیگه محتمل نیست وقتی که عذر وظیفه شو انجام داد و نرسید به تکلیفی که مولا بیان کرده دیگه محتمل نیست یعنی اون احتمال ارزش قانونی نداره احتمال در احتمال اون ارزش نداره چرا چون وظیفه مولا رساندن احکام تا مرحله رسانه‌ایه به تعبیر بنداغایشون دیو دیگه تا مرحله رسانهی هست مرحله رسانهی هم عادتاً به اقدار آمر مخلطین هست عادتاً اونجور که مرحله وقتی که انسان تحت کرد و مرحله رسانهی چیزی پیدا نکرد اینجا بجوی قاعده قبوله قابل آبنان پس این بین این دو قاعده جمع میکنیم دفعه در محتمل قبلت فرس قبوله قابل آبنان برد ف بین این دو قاعده پس با هم ندارن این طور می سا نه اخواری ها بگن جایی دفع زرم محتمین نه ده هزار محتمین به اصطلاح موردش یک جاست تبیریشون موضوعا و موردن فرق این راجع به قاعده قبل حقاب بلا بیان پس ایشان این نتیجه رسیدن که قاضی قبل حقاب بلا بیان بعد الفست جاری میشه اما قبل الفست جاری نمیشه و لذا ایشون میگن که این قاعده فحض در قاعده غورت ها تأثیر در مختصی داره یا مطمئن مختصی به و اما برایت شرعی که مراد از برایت شرعی بارضش حدیث رفته چون رواتی دیگر منوی ازدراک در اون نقطه بکنم بارضه در برایت شرعی حدیث رفته حالا اون تصدقه اشکال قبید دارم خب فعلا بارز در کلمات آوایان و ما همون حدیث رفت که بعد ایشون میفهم که عدلت و حالا تقدیر تمامیت ها سندن چون معلومه استاد خودشون یک در سنده حدیث رفت داره یعنی این حدیث رفتی ای که رجمال های علمونه اشون اشکاری دارن حالا انشاءالا شاید در, در خلال بحثان من خدا میشاره بست وقتی این حدیث را اگرچه مطلقه چون روز همومتی مالای عالمون الا انه اطلاقا قد قوید با استقلال عقل به وجوب فهم، یعنی همون بستی که اخیران هم تحتیل مطرح کردیم اینجا قرینه عقلی داریم به اصطلاحای مخصص عقلی گذرست آبرا داریم قد مخصص عقلی انسان اللهم الان بنی اومد قاطراتم خب معلوم هم گه کسی مثلا از بنی آمهیه باشه اما مهم میشه خب مع میشه لعن می میشه، باا لنش آمیون میشه. ولو اصلاح داره داریمیم ال بنی آمده خاطر کن وکن آزدن شماره اون نمیشه. وقتی ایشان قد قو یهده به استقلالله قلن میشون تق رو زار عقل پیش یعنی وقتی گفت فع امتی ماللا علممون یعنی اونجاایی که تو فحص بکنی رو به نتیجه نرسید. و, و, و, و, و نه نرسی. او عمل به اصللا، چون اگر زنا بش انسان مالا یعلمون فحسن نخواهد اصلا اصل نبوت هم همین این یک بحثی اینجا اشاره فرمودم احتمالاً معلومه علی کرم الله و الله که بحث اون وجودی نظر که در کتب کلامی بوده سابقا که از چراغیه ایشون بحث وجودی نظر رو با فقه در شواهد بدوییه در موارد فقه از یک نقطه گرفتن حالا این اشتر خودش خواهد تشاره که من اشتر بعد در خلاب بحثها اشاره میکنن. و ازا لذب کن و بحث رسول و انزال کتب لغوان بحث ما فعلا بعد از ایمان به شریعته اشتباه نشه شاید شما بگیرن الان بحث ما در براعت بعد از ایمان به شریعته شب چه مثلا سیگار کشیدن و حرام هستن این بعد از ایمان به شریعته رو داد ایمان به شریعته نیست معنوی هر چیزی دارن که نه این قرض نمیکنه اگر بنا میشود فلسفه در وجود اصل موضوعن فلسفه وجود به نظر اصطلاح خود این کتاب باباهای داره بحثه می کنه همشون داره تو کلام لا لاله ذمکن و بعث به انزال کتب لغوه ضرورت انهو لغنیه جب الفسله بحسن العقل نظر لم ممکن اصل موضوعات قرن این یک خودش بشه آیا اون نقصه رو که ما در اصل شریعت میانیم بسید در فرو هم یعنی مثلا دو نکتر دو معیاره دو داریه بحثیم انشاءالله از این بعد ایشان وارد همین بحث شدن که از کن ما وارد یعنی تفاصیل رو چون بعد میخواب بعد نتیجه ان موضوع از دلت البراعت شرعیه قد قیده به ما بعد الفحص فالفحص و فی موارده در این نما ها به بمونده موضوع. و منزاله که هر حال و دلیل استصحابه و هم حرفم به حرفم یعنی هر واقع استصحابه می توانیم مرحوم استاد آهدت آقای قدس الله نفسه بیشان اشکالی کردن که می یعنی این بخش رو تمامش میکنین بعد وارد مناقشات میشیم، شیم اینشاءالله سالم حرص که مرحوم استاد قدس الله نفسه در اینجا اشکالی به مرحوم نائینی می کنم. این زیل کلام چون از نگفتیم تو این زیل کلام اشکال نمی کردن. مرحوم نائینی فرمه منهانای هر حال و دلیل استصحاب ایضا حرفا به هر مراد مرحوم از این به سلطان در شما کلیات است. مثلا مثال معروفی در شهر همدان در شده. مثلا افیان زن بعد از انتصال ادن و قبل از انتصال خب تمثل کردن به حرمت برکی یعنی حرمت برکی که قبل از انتصال ادن بود استصال بکن مثل فرصان قوریت یا طرفی خیار قبل نفرند تمثل کردن به استصال افیان این اینا استصال هم یعنی در طوراز و حکمه کلیه مرموم نایمی وفاقاً مشهور مشهوری که قبل از ایچان و بعد از ایچان رفاقاً مشهور استصحاب رو در شبهات حکمه کلی جاری میگنن روشن که شبه آنکوی جاری نمیگنن استصحاب در شبهات موضوعی بحث در و اینها اشکال نداره وقت در شبهات حکمه کلی اصولاً من درستم یعنی در خلال هم این وقتی اشایه بکنم اصولاً بحث استصحاب که مفرح شد در فقهه اسلامی به طور رو کردی کار برشی اون صورت اصلثر استتصاار تو شما بکنی و تصیل کله تووزی هم سالن هست کردم بالاعرض میکن. این مووزوع جزئی و اوضاد خارجی اینبحث نبوده این تقریبا دی زیادیشون به استی کرد اون رو مصوبانه امی گرفتن پس یکتر استفااق میکنم دیرو زنده بود یهز ج است. پس از اون دیروز, دیروز, دیروز فران شهر بوده امروز اون شهر این استفاق بود این معنا اجرا میکن ان من کلام. اجراع استثاثر در شباهات و حکمی کلیه بناسه دراغت از این به دراغت روشن بشه اینه که ناریمی فرمونه دلیل استثاثران رو همین طوره یعنی لا تنغازل یقینه به شرکی که در شباهات کلیه جاری میکنیم این لا تنغازل یقین جاری نمیشه الا بعد الفرس یعنی مثلا شما بگیر این زن یه رو مباشی بود سابقا الان هم بعد از انقضای اهوابتشو میتونی احتساب بکنه یا نه اول فحص بکنه اگه در رسان ادله پیدا نکردی اون وقت احتساب نمیشه روشن یا خيار پای الانه به فلسفیانه احتساب بقاارش یا پس مراد ناینی از این استصحاب استصحاب از رو نمیگه که ناینی قائل باشه سوال نشه مگر در مصادیق در شکر در نیست عمل میشه قابل و این لاین رو قائل بشه. مرمون استاد قائد نیسته اشتباه نشه من مازویی رقاقم و من تاقیبا نرد کردم در دنیای شیعه حالا این بحثی در دنیای استاد هم تأثیر بود همین بحثو که زن و مواندون شابهش تا استطاب باشه یا نباشه و اضافه این برای اون در دنیای شیعه اوائلی که این بحث در اصول محامد مثل محنون سید موزا و شیف توسی ولی اونه ترکه این مسئله شد. من منوال فقه شیعه رو مخوام بگم تدویجاً تنظرشون رو این شد که استثاب جاری میشه جشباز رو پویه کدیه و یه یعنی آشان یکی از به اصطلاع موزیوم یعنی معارنه یکی از اون چارچوب های اصلی اتفاقه رو بسولی شد اخباری ها در غنی ده مخالفت کردن با اون اصولی ها یکی از چارچوب های اصلی شد رو همینی از, از اصلی که از چارچوب های ها، مطرح کردن همین استثاب در شعات وکنیه کنیه میگن نمیشه, مجدن نمیشه. یعنی چند تا نقصیه اونا نکات رئیسی اختلاف اخبار های گمتش کردن و مطرح کردن همین استثاب در شعات وکنیه کنیه بعد هم که رهیل بهوانی و بعدی آمدن باز خلاف اندار اخباری گفتن میشه در فکر شیعه در اصول شیعه هم مرواد این قضیه در ذهنسون باشه تقریبا بعد از انتشار مدارسه جدید و اصول توسط به معوم میشه که و ریقان بعدا لا نفسشه به جریان استطاق تو مهم شخور همتاری مردم نراغشکه ای داره اون شووهه رو معوم استاد تت کردن و معوم استاد در اینجا موافقه با آن ناخوایا شدن به اون نمیشه هرگسن به قول اخوای ها که نمیشه البته استدلالشون فرق میکنه استدلال معوم استاد با اخوا کهات چه م اعاس من بعد, بعد مسائل اساسی جاش باشه در کل اصول اشاره میکنم چون خیلی مسئله مهم و اساسی خود بنده هم میگم نمیشه به استاد بقیه نه از راه ایشان راه ایشان تا راه آن اخباری ها اصول عدله است ما بیشتر شبیه اون کلام اونا اینشالله بحثش بستش در خانه. پس خلاصه این شد که فحصه از مخصص در بابعان به نکته یه بررسی ماه نظام فصل بحث از مخصص در باب اصول عملیه به نکته تنظیم مخصصیه که اصلا مخصصیه هست یعنی. این خلاصه یه ای نکته تعبیرش هم ذکر حالا اینا ببینید مقرر لازم اشاره کنیم ان ذهنتون آماده بشه قبل از اینکه ما وارد این بحث بشیم این بحث این نکته رو نگاه کرد دلیل حجیت آن چیه مثلا دلیل حضیت آن سیر هست این, این دلیل آیا خسر را هم میگیرد ما قبل خسر را هم میگیرد دلیل اصول عملی چیه از حدیث در عمد. از این عبارشون من میخوام نقطه قانونیونی کرد حتی استاد هم متعرض نشده. باید اون همیشه در بحثای قانونی و در بحثای اصولی ذهن رو توسعه برید ریشه های به اصطلاح این روز ما میدن حقوقی ریشه های حقوقی و قانونی که بررسیبه کنیم این نکته اینه که ما عدل چه دلیل داریم که آمود چطوریم این سؤال آیا این دلیل قبل از فرس از مخصوص همی یاد چه دلیل داریم که مثلا براعت هم دفع حکم ظاهر آیا این دلیل قبل از فرس هم شامل میشه اون نقطه خنی رو باید یعنی قبل از این وارد باشم میخوام این نقص رو اعرض بکنم من موسیقی تو ننمیرسیم باید ببینیم که آیا اصلا این دو سا دلیل از یک سن خن بگرد اون راه رقوقی و قانونی و اون نقطه خنی به نظر محیله که آیا این دو لسان دلیل یکی سیره و اغلا برزوجیت آن و یکی رو فهمومتی مالای علمون علا ترویل فهمومتی س آیا ریشه این دو داریم یکی اند؟ یک جور معمولاً مقایسه می‌کنیم که دو نتیجه میده. واشتم میشه دلیل مثلا این دو تا یک لسانه، یک خصوصیت یکو فهمند. لکی دو تا نتیجه میده. توی اصل ردی قبل از به اصطلاح به یک نقطه جا مثلا جایی نمیشه توی دلیل اصل عملی به نقطه دیگه. این رو باید اونم که فکرستون دوباره انجام بدیم. در حقیقت حالا من باید اشکال از طرف استاد باشم بعد توضیحاتی رو که خود ما ان شاء الله ارجو ایشون می‌فرمونه که این مطلبی که ایشون فرموده درست نیست اصلا من هم با استادا رو من چون چند دفعه اینو گفتم احتمال میدیم بله اینا حرفای آقای مقرر حبیب‌الله باشه شما نمی‌دونید درید اصلا گویا طرفی مرو استادشون ناهینی رو به عنوان محقق ناهینی بعد خیلی تو میبوند رب میفوند خیلی دوانه در بیاله میچیش بگرد این کتاب بیاد مارد واسه اینجا ایشون داره که مطلب گفته ایشون داره اینه ایلا ایلا واقع موضوعی لها این صفحه 25 این صفیه 252 ایشون فهموندن که قدسته انا به اینکه که ما افاده و شیخون الگستاد من الفرق بینه ما خاطعون جدن ولا واقع موضوعی لها و افلا خیلی توابیر کنی دارم میشه در دستالله ها دسته در دستالله ها همپس آمانوشون خوب شد از شان خدمتون که اما مرموم استاد مرموم استاد حرفشون اینه که ما دستمون در باقه فرد در شباهات در اصول لفظیه اصول احمدیه این رو باید حدود شروعشن بازن وقتی ایشون یه تعبیر کردن من حالا تعبیر خود من رو با یه اضافات اضافه می کنم به تعبیرشون شما در حقیقت خلاصش رو همین طور بفهمید یه دفعه بحث فحصه از مخصص رو شما توی بحث دلیل لسری بررسی می‌کنیم در مثل روایات اهل برید یا تعبیر علمی می‌کنید در یک قانون خاص در یک نظام قانونی خاص چرا چون در این نظام قانونی ممکن است عام دهان فعلا باشه مخصصش و قول بعدشون در توقیه ها فرقیه همونجمان میکردشون همین حقیقت مشهور که برقبر امام مقدم که نواز نکرد مشهور مقدمه لیکن در وارد محاضی هم داره زبان اوام افتاد مقدم اما در حقیقت محاضی هم هر دو داره نه مقدم برقبر امام نه مساوی قبر امام از ما این این مرد که مساوی و مقدر نمیشه این در طبیعات بقیت الله هست یعنی این حفظ تحصیل این حفظ در طبیعات آمد حالا این علاقه استاد نکم به من مثال نیست یک دفعه شما اینجوری فرست میکنید یعنی نقصتون در فرست اینه که ممکن از آن یکی وقتی آمده خاصش 250 سال بعد آمده یک دفعه اینجوری بحث میکنه یه در بح اینطور نیست بح و به ابا بارتنا تعبیر یه بحث قانون اونی که الان در دنیا در پنمان ها متعارفه. تا یه قانون عام رو ج میکنن در مخصص بهش حالا حال روزی میشه از بیا مخصب بعد از اینکه مدتی 5 سال 6 سال بوده افزار یک سه و اون کا عام ببینشه. پس ما در حقیقت دو جور عام و قانون ببینید بنده خلاصه یک عام قانونی مراد ما از عام قانونی یه عامی در یک نظام خاص نظام خاص قانونی یا نظام معین که در این نظام معین فرق به عام تا مخصصش دیویت سال هم میشه یه دفعه نه اون نظام اغلایی که ما الان داریم متعارف خارجی اغلایی در متعارف خارجی اغلایی قانون عام میاد به اون عام عمل میکنم تا مخصص بیا مثلا پدر بچه که شما هیچ وقت با فلانی صحبت نکن مثلا بعد از دو ماهی ما میگه خب اگر یه وقتی با من بودش قرار نه با او صحبت کنه ما خاصش دو ماه میگه ما وجه قانونی مثلا اوراقی چون هر کدوم ما در بحث های قانونی ارتباطی قانونی هر مدرکی میذاریم که قانون مختلف باشه یا مولا ع باشه یا پدر و پسر باشه یا زوج و زوجی باشه هر چیزی که یک نقطه اشراف و ولایت و به اصطلاح سیطره قانونی مطرحه هر چیزی که باشه فرم نمی کنیم پدر می برشش بگیم پس بنابراین مرموم استاد می این جوجه جوره. پس بنابراین هستگاه یه وقت در هر گمه ها. از ثبوت مختصیش و از گارتون از اون بعد ایشان میگه توضیح هزالک اموماتی در کتاب سنت هست یا موالی و ارفیه. اگر اینها خودش در معرض تخصیص باشن همسو که همه همه همه همه همه همه همه همه همه عاده بیان مراد فی مجلس واحد اصلا دعو به پیغمبر اکرم اینجوری بوده دعو شریعت مقدسه البته یک ها این خیلی مهمه این یک تفصیلیه که بگیم در شریعت مقدسه دعو برای این بوده که حکم عام در یک زمان بیاد مخصص این 50 سال بعد بیاد خب این خودش واقعا این تا چه چه درجه غلایی داره و اعلانیت داره این با مثلا علی شو میگه این بوده که در یک مجلس عامو گفته مراد جدی یعنی مراد استعماری مراد جدیش بعد از 50 سال امام صادق و کان دعو ایشون زرموده عدم بیان مراد یکی مجلس واحد این مراد از کلمه مراد یک کلمه ام جدی بش اضافه به طریقه پس بنابراین در این شریعت معاصره تفکی کرد بین مراد استعمالی با مراد جدی مراد استعمالی در رفتان پیغمبر میان مراد استعمال جبی در دوانیمان صادق بعد و در صدب انجام او خرال بیان لعج مسلحت مختبی کماهار او الحال فی عمومات کتاب و سنه بعدیشون بله. و لنتیجه تو دالک اینه مثل آقایی الامومات قد علم نامن خارج انا ها فی معرض تخصیص اصلا میدونیم این امومات کتاب در معرض تخصیصه من اینشالله چون آق خود رو استالی زور فرمدن هستم ما erkdim این یک نکته است. اون تو بحث کوچیه به اینان ها اشتباه میکنن که اینا قابل به حجیت کتابی نیستن. مراد زواهر اخباریان همینه. همینه که اینجا رو قبولی کرده. ذات عباراتشون شده. در حقیقت اخباریا میخوان بگن عموم کتابی و عموم نیست. اینو من چند بار توضیح بدم. عموم کتابی و عموم لفظی هست. عموم قانونی نیست. مثلا قوه خوبه العقود عموم الربیه از جمعه و حلال درام مفید عمومه اما عمومه قانونی نیست مرمومه استاد اینجا من حیصله اشعار بگرد بردو بگید ایشون می که و نتیجه تزالک انه مثل ها در عمومات اله که قد علم نامنه خارج انه ها پیمه ارز خب اگه دیدیم در معرز تخصیصه یعنی دیگه ارز تخصیصه یعنی ارز تخصیص و اندعب المتکلمه به ها انما ها و علا بیان مرادات الواقعیت منها حالا اینجا به جای کلمه واقعی الان مطارق این طور شده مراد جدی یعنی فرق زنده بین مراد جدی و مراد استعمالی بلقرار این المنتفصلت المتأخرت انها زمانه هم بله لایکن و حجت اصلا این در قبلت فرق و نیست لعدم احراز بنا الاغلا علال عمل بها قبل ما پس این تأثیر در مختصیزانه و اما اداکانت الامومات ریستد منترک الامومات التي تکنو فی معرض تخصیص کم هو الحال فی اکثر الامومات الوارد من الموالل ارفیه ایشون تأبیر موالی و ارفی به نسبت الى عدیده هم و خدمه هم من همیشه ارض کردم تا این ساور اصول ما رو نمیشه دران به انگلیزی ترجم مکن و ایران شده رابطه عبدالمرلا را مطرح می کنید خب ایشون به جای کلمه نوازی و عدیب می کنند که بشر همون دارن انجام می دونی می خواستین خب را برن ایشون به جای این تعدیب دو سفته ایشان نوشتن ایشان جمع می صفحات در دو کلمه یکی قانون به شکل عام که ما الان داریم یکی قانون خاص که در اسلامه ایشون آمدن گفتن که در اسلام کیفیت بیان قانونیش با این کیفیت بیان قانون آم ترمون کنه بلازه ای در کیفیت بیان آم قانونی آم رو میگن بعد از مدتی اون وقت خاص رو میگن دقیق میکنیم این میگه از قبیل مضاهم درسته اما اگر از همه اول آم که گفته آم و آم مراد میتونیم بیمیتونیم مراد استعمالی چه خاص میاد زمان امام ساده؟ پس اینجا از قبیل موضوع مختصی دیگه لذایشون می که اصول عملی با این اصول لغزی از اینجا فرمان رو کنم بگر کردیش عبارتی ایشان کهی رسالی من مختصر و رسال که پس ایشون میخواد اینجور بفرمان خلاصه ای مثلا به طور کنی در نظام قانونی و حقوقی اول عام میاد زد خاص میاد در اینجا اگر ما مخیلی فهضه از مخصص خواهیم فهضه از مزاهمه مانه اما در شریعت مخدس از همه اولش هم آمش خیلی آم نیست آم نیست که در معرفت تخصیصه پس شما فهضه از مخصص بکنید تا مقتدیش تموم تا ثابتش آمه شما باید ببینید در روایت امام و صادق تخصیص خورده اهلالله هل بیعنه نخورده اگر مخصص خواهیم لباس نماز در همین ما از پیغانوار نماز در همین نخویم خاص پیغانوار در طبس الحریم اما لا تصلف الحریم نداریم خاصی کردیم از امامزه تا اونجا رسید کلا تصلف الحریم پس شما تمسک به عمتا خود و زینت کردن اینکه خود به مسجد تفسیر شد این آیه مبارکه به لباس در حال نماز خود و زینت کردن به خود به مسجد تفسیر شده که در حال نماز انسان سایر عورت به لباس بشه این دلیل عامه حریر هم سامنه چه با خوبی دینات کنید آیا میشه به این تمثل بکنیم بگیم نباسد نواد در حجم نه با مواد در محمد زاد سریح آمده داسو صالحه به حریر بگیم سال بعد در فرمون با که به اون روایت اون وقت اگه گفت این روایت مثلا ثابت می با مثال مخاب بگم اون وقت بر اون آم بود شد اون وقت امبودنش ثابت میشه کی ثابت میشه که اون خاصه پیدا نکنیم پس بنابراین فقه از مخصص تأثیر در مختصی داره پس فقه از مخصص به لحاظ قانون عام تأثیر در مانع داره به لحاظ قانون شریعت مقدس طبق تصور مرحوم استاد تأثیر در مختصی داره شبیه اصول عملیه میشه این هم تفصیلی بود که و نکته بود که مرحوم استاد فرمود این نکته وقتی بستی از مخصوم خودش وقتی مستقریه لیکن یکی دو مطلب راجعه به خود این مطالب هست هم مطالبی که مظموم ناینی فهموندن هم مطالبی که مظموم اصطاق فهموندن که انشاءالله فرده از مخصوم شما با فراموه